اما اونچه روایت از واژه یقین به ما یاد میده یک است که مربوط به ذهن فکر و دستگاه تفکر انسان نمیشه اونچه مربوط به تفکر انسان ذهن انسان که با یافته آموزشی با مطالعه با درس گرفتن، تعلیم و تعلم به دست میاد اون نهایتش میشه علم مقابلش میشه جهل علم مقابلش و ضدش جهل دانایی مقابلش نادانی مثلا یا بهتر بگیم آگاهی و ناگاهی اما یقین در لسان روایات به معنای آگاهی نیست موضوعش و جایگاهش ذهن نیست جایگاهش قلبه جایگاهش روح انسانه یقین به معنای اتمینان ذهنی نیست اطمینان قلبی است خیلی هستن که اجاعت ذهنی علم دارن علمشون هم علم 100 درصده اما قلبشون باور نداره میشه انسان یه عزیزی رو که از دست رفته دور از جون همیگه شما یقین داره که دیگه این جانی به بدنش نیست اما همین عزیز نزدیکترین اگر شب باش مثلا بخواد تنها باشید چند تا آی برآنی سوی برآنی تلاوت کنه نمیشونه قرار بگیره. خوبی در وجودش هست از جهت ذهنی زهن، علم دارد که از این کاری ساخته نیست ضرری ایجاد نمیشه برای اما قلبش این رو باور نداره روحن باور نداره که مشکلی از وجود این جسم بلا روح و بیدانی جان ضرری مثلا به هیچ کس از جمله خود این فرزنده مثلا این مرحوم یا مرحومه ولی میترسه این ترس همون نبود باور قلبیه وقتی انسان باور پیدا میکنه قلبن میگن یقین پیدا کرده